بسم الله الرحمن الرحیم التصغیر القسم الثانی قسم دوم دو تصغیر قسم اول شو خوندیم در چهار درس آورده بود القسم الثانی المؤنث الثلافی مؤنث ثلافی قسم دوم دو معنس ثلافی اولین موضوعش هست معنس هایی که یعنی سه حرفی هندون اسم تسقیرش میشه هنیدتان دتون، فویزتان دعد دعیدتان گروه دوم اوذان هست اونا موانسای حقیقی بودند حالا موانسای مجازی رو آورده اوذان اوذینتان عین عینتان ارد و ری این خیلی ساده هست یه نقطه کوچکی رو می‌خواد در این مورد به شما بگه القائده اذا صغر الاسم الثلاثیو المعنثون زمانی که تسخیر بشه اسم سلاسی مؤنث تعلیثا حقیقیا او مجازیا حالا چه مؤنث حقیقی باشه چه مجازی و کان خالیا من علامت تعلیث و خالی از علامت تعلیث باشه یعنی در مکبرش تا نداشته باشه مثل هند، فاز، اوزانین ها هیچ کجون تا ندارن لحقت آخرهوتا و تانیف ملحق میشه به اون تا تانیف در تسخیرش هند، هنیدتون فاز، فویزتون دعایدتون دع دع دیدید که در تسخیرش چی اومده؟ بله البته در پاورقی مهم می آورده میگه در تسغیر بعضی از کلمات دیدیم که تا نیومده با وجود این که هستند با وجود این که چه هستند؟ مثلا کلماتون جزیر سمیعت ترک و تایفی تسغیر قوس حرب در خود در تسغیر اینها و همچنین عرب، ناب، فرس، نقل این نوع کلمه که اینجا نام برده میگه باوجود این که معنیس حسن در تصغیرشون تانه آورده، در تصغیرشون تا پس این قائده بهمین به سادگی بود به خاطر اینکه که بود بریم درس بعدیش تصغیر و محضوف اللام و الفا اگر کلمه فاولفلش یا لاملفلش حس بوده باشه مانند عبه مثلا ما از اب تشخیص میدیم که آقا این یک حرفش هسته چرا؟ آخه چون در عربی ما کوچکترین اسمی که داریم سه حرفیه از سه حرفی دیگه پایین ترش نداریم اسمی که از دو حرف تشکیل شد در عربی ما نداریم موقعی که اب دو تا حرف داره عخ دو تا داره دم دو تا داره از اینجا ما میدونیم که یکی از حروفش شده اب در اصل بوده واب هست شده ازش برای از کجا برای اینکه حرف تشخیص و حرف حذف شده رو تشخیص بدیم به مصنا یا جمع یا فعلش برمیگردیم مصنای اب ابوان هست پس می دونیم که واب ازش چی شده حذف شده مؤنث چی شده اخ واب هست اخوان پس حفش شده عب واب بود حفش شده اخ واب بود حفش شده دم خود نحوی ها اختلاف دارن که آیا ازش واب هست شده یا یا چون بعضی ها مسنناشو میگن دماوان بعضی ها میگن دمایان متوجه شدید؟ به خاطر این در هر صورت ولی این نقطه رو بدونیم که اسم دو حرفی نداریم یکی از حروف حذف شده و امثله گروه دوم عیدتون هست فا الفیلش هست هست خودمون در سرفیمی قایده رو خوندیم که بروزم فعل باشه مثال واضی وابش واضی، هست میشه ایدتون در اصل وعد بوده سیلتون هم هبتون هم وعده وصاله وحابه از فیلشون تشخیص میدیم که و... و... هست شده وعده واب فیل وعده هست واضیش هست شده وعده وعده سیلتون و سیلتون هیبتون و هبتون خود این الان در این درس قواعد اینو توضیح میده که اگر حرف فا الفل یا لام الفل حذف شده باشه چه مشکلی پیش میاد این الفل که حذف نمیشه اذا حذف من الاسم المکبر حرفون قاعده 1213 زمانی که حذف بشود از اسم مکبر حرفی از اسم مکبر چی هست بشه؟ حرفی. حرفی و بقیه على اصلین و بر دو حرف اصلی باقی بمانه مانند دم که الان چند حرف داره؟ دوتا. و جبه رد و المحفوفی انده واجب است که حرف حصد شده هنگام تصغیر بر بگرده مانند عب که مسننش کتی و بگ واف برگشت ولی بعدش هم تبدیل بیا شد که قبلا خوندیم مانند نبی و علی در اصب بوده علیو بر وزن فعیل واف در مرحله چهارم به بعد قرار بفته تبدیل بیا شده این هم در اصب بوده اوبیو اوبیو ولی واف تبدیل چی شده؟ تبدیل بیا شده شده اوبی پس اوبی تصغیر اب هست پس در تصغیر اگر حرفی هست شده باشد کلمه ای مثل ابو دم که از ابواب هست شده از اخواب از دمواب یایا هست شده در تصغیر بر میگرده در تصغیر چی میشه بر میگرده مثلا ادتون ادتون وابش هست, هست. در تصغیر میشه وعید ادتون واب برگشت در صیلتون واب هست, هست. در تصغیرش برمیگرده و سیلتون. در هیبتون هم واب هست هست. اینا مثال وابی هستند. واب برگشته شده و حبتون. به این سادگی.